اروپا با تمام تعاوت آن در نظر من یک ناباخت و خسته کننده میشد. عشق شوری که روزهای اول به هنر خود داشتم دیگر مرا ترک گفته بود. بیشتر کسانی که به شکار این مرغ خوشباد و میروند و راه پر مصیبت هنرمند را پیش و وسط راه وا میزنند. از صد تا نفر وازده هستند و بقیه ده درصد آنقدر خودخواهند که دست آدم به دامن آنها نمی رسد. اما هنرمند واقعی آن کسی است که شخصیت خود را در هنرش کوفته و آمیخته باشد. به اولین هنرمند در بهله اول باید انسان باشد. آخ، آقای نظم گفتنش چه آسان است اصلا پنا درس دادن کار خیلی ساده است. کسانی که در دس بیوکس آرتس دورو بر من بودند اغلب، با هنر بیشتر تفریح می کردند و آنقدر دل به کار نمی دادند که زج ناکامی را تعمل کنند تا بتوانند لذت موفقیت را دریابند. زندگی بیشتر آنها تعمین بود نقاشی می کردند برای آنکه آسانتر از هر کاری به انظر اینها را پداران ثروتمندشان وادار کرده بودند که برای خود مشغولیتی برگزینند. سالی هزاران نفر از این نقاشان از این مدارس بیرون آمدند اما در هر قرنی دو سه تا هنرمند زندگی اجتماعی به بشریت می بخشند. جیرا که روز ملاقات با او در تهران در راه از بالخان خیابان لالزار مبهم و تاریک احساس کردم پس از قریب چهار سال در پاریس در محیطی که در سر هر کوچه در هر باغ و در هر محفلی در تاعترها حتی در کوه کارگران و در دهکده های محقر زیبایی های افزونگر دل آدم را ریش می کند. به تمام معنی با تمام فاجعی که دربر دارد داشتم ادراک می کردم. چقدر دلم میخواست برای شما می توانستم شهر دهم که چگونه این ناتوانی و بیستدادی در وجدانم راه یافت چه کشیدم وقتی مجبور شدم واقعیت تلخی را که با آن آگاهی یافته بودم به اطلاع پدرم برسانم. موزیک دوست دارید؟ من لذت بخشترین ساعت خود، عمر خود را وقتی میدانم که از یک آهنگ موسیقی خوشم بیاید عجیب این است که همیشه اینطور نیستم گاهی موسیقی به هر نوعی که تصور کنید برای من خسته کند و کسالت آور است چه راجع به موزیک برایتان صحبت میکنم؟ در این سمفانی ها گاهی آهنگی آرام و کم از میان هیاهوی رخ نمی کند. این آهنگ خفیف و لطیف است اما به دل شما نمی نشیند شما دائما انتظارش را دارید باز این صدای خفیف تکرار می شود منطقه این دفعه بیش از بار اول شما را می گیرد کم کم تمام ارکس یک صدا همان آهنگ دلخواه شما را با چنان قدرتی بیان می کند که دیگر اختیار از دستتان در میرود. مصیبت های جگر خراش هم همینطور بروز می کنند. انسان اول تمام اونگان ها را درک نمی کند گاهی خودی نشان می و در نیستی فرو می روند. ناگهان تمام ارکس به صدا در می آید. آن وقت اشک از چشمهای شما جاری می شود و خودتان نمیدانید برای چه گریه می کنید. پس از نخستین ملاقات با او این ادراک فاجعه زندگی من این درد تعول ناپذیر که BSعداد هستم مهند همان آهنگ جگرخراش خودی نشان داد و باز محو شد. اما وقتی تمام فشار آن را چشیدم راستی راستی می رفتم و ساعتها موزیک گوش میدادم و همین که گریم به خودم می من که نمیدانم برای چه گریه می کنم، من به حال خود دارم می آن وقت این عشاق عبله که این حالت مرا میدیدند دیدند خیال می که من از فرد شوق و یا از فرد رقت گریم گرفته آخ انگیز چشماش را بست دستهای کوچک را مشت کرد تکان شدیدی به تمام بدنش داد من حرکت شدید سیناش را میدیدم نقاشی کردن شبیه چیزی را کشیدن خط موضوع رنگ های مناسب را پهلوی هم گذاشتن این آن چیزی است که شما می توانید در مدرسه یاد بگیرید اینها و اصولی دارد و هر کسی که چند سالی کار کند یاد میگیرد. من هم این کار را بلد بودم. اما اون روز چیزی که از من نمی آمد خلق اوالم و حالات بود. یعنی یک اثر هنری. شادی را که در زندگی احساس کرده اید، ددی را که چشیده اید، استرابی را که از ادراک حادثه به شما دست داده، لذتی را که تاب آورده اید، انتظار، شوق، دلهوره، ترس، وحشت، حسرت، ناکامی، بی کسی، اینها را منعکس کردن به طوری که تماشاگر نیز همین عواطف را احساس کند آموختن این دیگر کار است و از دست معلم نقاش شما هرچن فریفته رخ زیبایتان باشد بر نمی آگد. دلم میخواست در یک اثر خودم آن شوری که در من است آن اجده که مرا به زشتی و پستی وامی آن درندی که درون مرا چنگ میاندازد جلوگر شود من که کسی را نداشتم اینها که مرا دوره کرده بودند اینها با قلب انسانی من سر و نداشتند از بچگی خواهری نداشتم که با او درد و دل کنم دختران دوست من از وقتی که خودم را شناختم به من حسد می‌ورزیدند مادرم از آن دنیای دیگری بود کتاب دعا سر جان اماز، تسبیح، قلیان و شازاد عبدالعظیم و قوم او را در زندگی راضی می کرد. خوشش می آمد با خواهر سلطان و امین الحاجی و خانم عرفان بنشیند، قلیان بکشد و قیبت کند. پدرم خیلی پیر بود و با وجود قلب مهربانی که داشت اصلا جوانین نکرده بود.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 بیرون بریزم دلم میخواست میتوانستم به خودم بگویم که چرا هیچ چیز در زندگی مرا خوشنود نمی کند. دلم میخواست به کسی دل میباختم و همه چیزم را فدای او میکردم اقلا آرزو داشتم آنچهرا که برای شخصیت من نایافتنی است بتوانم در یک پرده نقاشی بیان کنم. این آن مصیبتی است که گفتنش در چند کلمه سهل و روان است با یک جمله تمام می شود اما انسان عمری آن را می چشد و این درد هر روز به صورت تازهی در می دلم می خواست یکی از صورت های گذرنده را می توانستم با رنگ و خطوط زیبا تسبیت کنم می فهمید وقتی به این حقیقت پی بردم چه روزگاری داشتم دیگر از همه چیز معیوس شدم